سلام شبتون خیر. می‌شم مورد نیمگر انگلیسی آشون. می‌گم مورد نیم، من هم می‌گم مورد شبتون خیر گفتم. آره صدای داریم، مدام صاحب شب ساعت چنده؟ ساعت یستو دو بیسته یه اولم حرف بزنیم. همیشه که نمیشه منطقی و غیر منطقی یه چیزی گفت مردم مردمم لایک کنن. مثلاً کی لایک کنه مثلا کامی لایک کنه مثلا پیج لایک کنه مثلا این دو تا تک فرند یعنی کسی دیگه نیست که بشه فقط فالو منم به خاطر دل اون دوتا تا میگم. مودم دمساز. می‌خوام یه خواهشی بکنم از اونایی که گوش میدن. می خواهم تجسوم کنم شما بریم تو حسش چشت رو کامل ببندیم یه ساحل بسیار باز و طویل سمت راست حدود 400 متر اونورتر چراغ های اسکله افتاده روی آب آب دریا و موج هایی که می به ساحل تکون می خورن یه طرف درخت نخل که کم کم دیگه سرده هوا باعث شده اون سرسویر خودشون از دست بدن و مردمی که بعضی ها میدونم بعضی ها دوشار سواره میکنن بعضی دوست دختارشون بغلشون رو دارن میگیرن بعضی هم دوست پسرشون بغلشون دارن خونه های آپارتمانی حد دکسر چهار ای که به دریا مشرف هستن درخت های بزرگی که نشون میرسه به 8 نه سال و ساحل بسیار زلال صافی که توین تاریخی مطق شب به کمک چراغ خیابون میتونم حداقل تا 20 متر رو ببینم. خیلی شفاف و دور دورا چراغایی که روشن میشن قاموش میشن سوسو میزنن همیشه از بچه که برای چراغایی که سوسو میزدن درم لک میزن فکر میکردم اونجوها چه خبره بعد وقتی رسیدم اون و یعنی رفتم پرواز کردم شنا کردم حالا هرچی رسیدم اون و در اون چراقایی که سوسو میزدن دیدم اینور ور بیشتر سوسو میزد زندگیه همون زندگیه که میگه هیچ وقت نمیتونه زیر رنگین کمون خودت رو برسونه دریای وسیع گسترده پرسته هم, هم یه دونه دیسکوبار ساحلی هسته که ودکا و ویسکی و آب روزر میکنه ولی درش رو بسته نه که باز نباشه بازه ولی داخل مشتری میگیره برای ساحل نه از دور؟ بله اتفاق چی بود؟ کل آره. آب رفت دوی کفشان فکر نمی کردم این حد بتونه بالا بیاد ولی جزر اومد خواد... کار خودش کنه از دور چ... چراقای خیلی کچیکی پیدا است خیلی کوچیک. فکر میکنیم چیه؟ چراق لنسر های مهای فوسفوری هستش من نمیگم اینه چرا منگیرم لنسر خودش داره نمیگم حالا میدرخشه آسرونم که طبق معمول میشه همه ستاره ها رو دید. زمین چقدر بینه زندگی چقدر خوشگله نمیخوام بگم زیبا چون زندگی خوشگله خوره زمین خوشگله اندازه همه خوبیایه کوره زمین خودش رسعت داره از یه طرف هم دوریه دوریه همین اونایی که نیستن دن پیشه دوریه همین اونایی که شاید یه راه وقتی فکر میکنی به گذشته یاد اتونیم از یه دوستی که خیلی عزیزه برام آدم میتونی چشمت باز کن. از یه دوستی که خیلی عزده برام همیشه میکرسیدم تو که سمت خیلی بالاست چطور شده تونستی تا این سن بدون میکید اتفاق داره چیسته ادامه بدی آب اومد خیلی اومد ولی منفتم گفت گذشته رو یدک نمیکشم با آینده هم اصلا کاری ندارم که نای اومده آلم رو زندگی میکنم خوب بود عرف کوچیک وسا و شیوا هستش ولی مسئله اینه که چقدر بتونیم بهش عمل کنیم. اون دول دودور شهری پیدا شهری که خبر ندارم توش چه خبره، فقط می‌دونم داره می می‌زنه. امیدوارم وقتی شما می‌کنم و میرم به طرفه وقتی قائق میگه که رسیدی باید بیاده شدید یا هوافی میگه کمر رو ببندید و رو به حالت عمودی در بیارید یهو متوجه نشم که سوی ساحل مقابل بیشتر جذب کرد بیشتر جذب شبتون خوش سبتم امیدونم مثل شب من باشه محشر پر از ساحل وحشیگری دریا سوسوزنی مقابل خیر مندن ستاره ها و تنهایی خودت دوست دارم رو ما.